برای معلوم کلی حالا این یک نکته رو اول ارزی بکنم که موثر دو مثلا بسونی بعد دیگر یک خاص یعنی کافی ببینید شما در وسط پشت سر زید خوشه سر این امام جماعت زید نماز پشت سر زید نماز خوشه سر این شخص اون بیرون انها انحاء می کنند. راجبش شغله خرذهنها بر چیه اون نقطه فنیه نقطه فنی تخلف عنوان المعننه این نقطه فنیه نقطه فنی تخلف عنوان از معننه گوشی پشت زدن از عنوان بعد از نمیاد عنوان بود معننه رو فوش سر این نماز میکنن که فکر اونم زیریه اینجا تخلقه فکر می کنم. فکر می کنم. عنوان نرد. اونی که عنوان دارد پشت سر این. هنگی از معنوان در نشده. فقط با فکر می میخوام بگم این فکر می کنم. می تواند سو معنوان تأثیر بگذارم. نقطه فرنیب به قطعه. پس ما در جاهایی که عنوان داریم و معنوان. گاری به این عنوان و معنوان تخلق می شه. اونجاها چهار آیا به دنبال عنوان داریم یا به دنبال معنون داریم سوال اینو تو عربه داره اونش خیلی از این بحثی در عربه هست و بحث فرسید. یه نقطه دیگه من از اولا از اینجا بگم و اون این که اصولا باید در نظر بگیریم بین اون مثالهایی که با از عربه نظر کردم با ما نحنوشی فرده این نقطهی فردیم اینجا مکنیم هاشه بوندشو کنیم چرا؟ چون در اونجا یک امر واقعی مطرحه ممکن است که اون قصد من نداره چون من دارم نماز میکنم یه امام جمعه هست اگر آده به نماز دوسته، فاسق نماز باطل من عنوان زد بشودن یا عنوان عمر شدن یا عنوان حاضل امام بشودن من دارم عملی رو انجام میدم که نماز سوندن دقیق میکنی این عنوان ها در اونجا معثر نیست اما درمان احنوشی انشاءه نکتی اساسی این چهار در مانه نکتی این شایه این شایه چون از سنکه اعتباراته اعتبارات ها به واقع نیستن این اساسی اصافی ولذا باید دقیقا بین این اونجایی که امور متحصل و واقعا نساب بکنیم با اعتبارات رو فرق بگذاریم مثلا مرمون استاد فرموزه که اگر, اگر مهمان آمد مثال بنده نان دخر این مهمان آمد علت نان خریدن نیست چرا؟ چون ممکن است ما بگیم اگر نبضه ستنده تبدالی اگر تبدالی نبضه ستنده ممکنه معلول بعد از اندیاری ممکنه علت و بعد از اندیاری ممکنه معلولهی لعلت سالسه یکیش این ممکنه پس اگر مهمان آمد نان دخرت آمدن مهمان علتی است. ما اون اگر تداری امر واقعیه. در امر واقعی ما تأثیر نداریم. واقعیت با حال خودش محفوظه. یا سرعت نفض علت قبل. یا قبل علت سرعت نفضه. یا هر دو مردون علت سالفه است. او یک امر واقعی است. من یه کلمه‌ای که پشت ادار ام ان بیارم یکی میشه جزاء بیاره. این برای بیشتر اساس نمیکنه. واقعا بارقارش مفروضه. اما امور اعتباری اینطور نیست. امور پوری واقع نداره. چون واقع نداره. همین که تو گفتی واقع میشه. واقعش همونه. اون یک ناقصه از داره، نه واقع خارجی. ولی جزاء سرخ امور اعتباری، با سرخ امور متسرب این قاره اساسیشه. این قاره اساسی اینه. و ازا در امور اعتباری ما از کردیم همیشه ابراز اساس اعتباراته اگر در افع نفس اعتبار بکنه به ابراز مکنه ای دردش نداره چند دفعه من هستم مرحوم های مرحوم های طباطباری در اصول فلسفه در مقاله شیشون میشون. چند مقاله شماره شده یک مقاله در اعتبارات اعتباری دارن کار درستیه این مقاله در او اصول خیلی میخوره این یکی از بحث هاییست که در ادراکات اعتباریست ادراکات اعتباری این طوری از امور اعتباری چون از که ادعاقات نفستن در افق و نفس پیدا میشن انتظاریت هم نیستن که من در بحث در درودی توضیح که تکران نمی کنم هم نیستن در افق و نفس پیدا میشن مثل مثالی که شما انت کردند در بحث درودیت زن که گفت زن بچ تو که تو، زوجیت هیقانی انشاری اعتباری در واقع اعتبار ایجاد میشه و نه این در حالت شاذ میشه نه اصلا سلولها بدن سلول میشه نه ویروسی که بدنش نشون نه کم میشه نه اون مرد عارض میشه هیچ فرقی نمیکنه هر ماشینی انتشار نمیگه که در تمام بعض حالات وجود ببینه اعتبار انتظار یکی گرفته شده انصافا همینطور که بنای اصولی های ماست این دو تا فرق میکنه انتظار در اونجاییست که منشه ایمتظا وجود و خارج میداریم هیچه هر ایجاد نمی کنه انتظار ما هیچ تأثیری نداره حتی در به آنکه چی که مثلا سخت فوق شماسی این فوقیت نه برای سخت چیزی ایضاف میکنه برای من هیچ چیزم ایجاد نکنه عنوان فوقیت برای این سخت انتظار میکنه ما اصلا نیاد به امور ایمتظایی حتی ایستلاح ایشکال مثل در این دو تا یک معنا آمده راسته، البته ام در اصولیا به معنا آمده. اینکه انصافا هر کسی میتونه اون نایو و اصال در همینش، خود ما مرددیم. یه سری انتظادیات، یه اعتباریات تعریف می‌ذاریم. این اینطور باشه که منشأ انتظار نه, واقعی. منشه نه آره آره وجود واقعی، وجود داره منشأ انتظار یک نحو وجودی داره، ولی بقوله تولا اعتبار، اصلاً نمی‌گیارد. یه وجودی داره، یه اعتباری شده، اگر اون انتظار می‌کنه. که چیزی اضافه نمی‌کنه. این است که اما اونجا که ما یکی از آنها بیم، ایجاد میکنیم. میکنی. این است اعتبار انتظار، لکن واقعیت هم نداره مثل زوجیت دیدن زن و مرد، من از کدام بنا این زوجیت کنند تکینیس؟ باخوند درستی را نزوجیت زوجیت روشن میشی نماین که میشه. کاین در زوجیت سیج. اگر زوجیت تکینی در جای هست، این باخوند درستی را ارز نمیشه. دکارت میگه حسن را کاری که ما میکنیم در مقام این اون زوجیت اعتباری رو تو به آر اعتبار ایجاد میکنیم انتظاه صرف هم بیزا ایجاد میکنیم می ایجاد میکنیم و رضا از حقیقت حقیقت زباش ایجاد قلقه زوجیت بین رجل و مره در رعای اعتبار زوجیت ایقای و نظام من اصلا رفت عرضی میگه نویشتان آنمون و نظام عرض کردی به طلق قبول وقت حبوری خوب دفت بکنی به بحث حبوری من به لحاظ تفسیر قانونی ما از عرض ازدواج تفسیر قانونی من داخلی در شروط قاعده علمانون از شروطه همه دیگه پسید اینه که در نوازیات و موضوع ما داریم که لا یکون و عرضای متعه الا به عجل معلوم به شرط معلوم شرط معلوم خیلی فنیه این در خیلی ضنیفه چون عزیزی از علمان احضاستان هست مهد رو عوض گرفتن و این کار تراسل شیخ استوسی به افکار ما هم آمد نبود پردن بعد هم یه آشدار شدیم های معامل معاوض عقد ازدواج لا معوضتون هستون بلا کل معاوضه هیچ کدوم نید. معاوضه بین زن و محنی عرض ازدواجی ایجاز خلقه زوجیت اعتباری اینکاری اینشایی در ریاه اعتباری این عرض ازدواج چون چی محن نخوابیده پول این زن و شوهر رو بیاید دو تا نفر در ریاه اعتبار و همدیجه زوج میشن مثل زوجیت تکمیش کرد اینجا زوجیت اعتباری روشن سنیم حتی ات روشن اعتبارات من چند دقیقه از کردم چون گفتم حالا بحث می اومده من یه توضیح دادم که خیلی بحثای کلیدی در اصول رو در تقو و در هر جا بحثی اساسی مد طور طبیعی دو دور در اعتبار داریم به طور طبیعی یکی اعتبارات قانونی که منبعی به اعتبار من حجت خلاص بخواد دولت باشه بخواد پدر باشه بخواد شوهر باشه در در جوامعی که زن سالاری زن باشه علاقم یک کسی که منبعی به اعتبار اون رو بر کار خود مقابل برای ایجاد میکنه در وعایت بعد ایجاد میشود این اسمش هست مارتا است در مقابل اعتبارات شخصی هم داری. که الان مطابق در علمی التزامات شخصیه بشینن. ال التزاماتش شخصیه. التزامات شخصی هم دست هم نمیاد. ما اعتبار میکنه. مثلا میده این کتاب این کتاب 2000000 تومان. درسته؟ میده آباد تو 200000. انجام داده؟ چیزی که در واقع نبید شما اعتبار نه به شما بروستن دو هرگاه رو همه اعتبار شد این رو اصطلاحا ناموزن اسمشون اعتبارات شخصی یا التزامات شخصی اهود شروط اهود نضوع تمام اینا اعتضامات شخصی هست و اقتصاصی به نداره هر کاری که شما بکنید که واقعی نباشه در آه اعتبار باشه این شخصیه شما بلند جنگو رو به نماز شم کنید این برای چی احساب میشه برای خودتون اما در اول گفتی اینه برای پدرم قرار میگیره. با این اعتبار شما برای پدر میشه و لذا اصلا کرارشی اینه هر عملی که انسان انجام بده اصل چیل اولیش اینه که برای خود فائل قرار میگیره. نیابت از اول هم قصد میخواد نه با فیم واقعیتی در ارده. واقعیت هر واقعیت موجود خارجی نیست. ارده. قیمت شما معامله کنم خب ممکن است که آه آها شما بخود معامله با سؤال. کردیم. شما این اوفو به کنم معنیش اینه. شاره میگه اعتبارات شخصی تونه من امزاد کردم. اعتبارات شخصی رو پس مئیار در اعتبارات شخصی روشن شد این نقطه دوباری شد از روشن شد اون مئیار اساسیش اینه که سضامات م... شخصی من امضا کنه چون این اصل به عنوان اصل اولی در قوانی مقبول شده که مکلف یا به صدای موزی شهرون مکلف به آهو مکلف حق اعتبار نداره دقیق مکلف به ما هم مکلف حق هیچ اعتباری نداره ولی اگه اگر این اعتبار باشه گفتم کتاب بودم 500 تومان بو گفت قبول کردم میگم نه یه خود دستور کتاب بده اجازه کتابدار اجازه بده شما میگی هرکی گفت 500 تومان قبول بکنی به هم 500 تومان حق نداره بگی 1000 تومان شما غلط گفتم شارع اجازه شارع آمد گفت شما اعتبار عقدی کردین قرارداد داشتین این قرارداد, این قرارداد رو من امضا می‌کنم المؤمنون اند شروطه شرط بستید پیش همون شرطه باستان ایزا می روشن شد پس اینا شد اعتبارات شخصی از پر شخصی داره واسی ای داره اشتباه نشه برد اقوض نیست نیابت هم نوع اعتبار شخصی. من حج برم از طرف بلانه این اعتبار شخصی حج مال منه شو لذا اگر زیاده از در محسوم راستان مشرف شد اینا بیا گفت سوابش راه کلا نمیشه چون عمل واقع شو تمام شد الواقع لا ينقل به اماه و بله اینم اصول اصول مسلمشون در اعتبارات بعد از اینکه وقوع و حق پیدا کرد دیگه قابل تصرف نیست هستن بیا بیا که مثلا دکانم میشن قرآن میخوان بهدارن سوالات کنن با ده ختم قران میخوان بعد درشون نیابت نیابت قران میگن شما اول مال بود شما دوم بود میشه این کارو کرد نه چون واقعا لا ينقل به و علي. وقتی که خون، بین خون قصد نمیخواد خودش، اصالتش قصد نمیخواد نیابتش قصد نمیخواد چون اصالتش امر باقی است عمل او انجام داده عمل هر کسی مال خود رو جب خوب ده قصد رو میتونی؟ سواب شده میتونی؟ میتونه ازبر می باید این کارو رو کنه بعد نمیتونه دیگه؟ سواب شده نمیتونه؟ سواب هم دیگه تفضل الهی باشه نمیتونه دیگه تمام شده ع حاصل بعد از عمل اگه بخواد قرار بده مگر به عنوان ثواب و نمیشه تبرک شرعی باشه زله اونا نمیشه چون حالا این بحث نیابت شهر شه طولا دیگه یه جاییه من ایشا توضیح میدم این ایراد نیست شرش میمثل مثلی دیگه میخوام بگم که غیر از عقود که چند بار دیگه این مثلا نگفت مثلا عضو در اثنای نماز مشغول نماز عسل بود دیگه شما نماز ظهر نخونده به خاطر عضو میکنه خود این عضو رو اعتباره خود <تص> این میگه اون نمازی که تازه رفتون در بمان عصر این ظهر بشه این اعتباره چون اون رو خونده ظهر میده عصر میده اون ظهر نمونده شرایطی که وقتی این قاعده خارج جای از عذور قبول قبول نهایتاً دیگه قبول نمیشه چون عذر اصلا قبول قاعده پس این قواعد رو خوب یاد گرفتید که امور اعتباری چه اون هر در امور اعتباری یک عنوان دارین یک هم اعتبارات شخصی این بحثان هم توی اعتبارات قانونی مثلا یه جبه علیه که سلاف یک سلاف دارین که عنوانه یک نماز خارجی دارین که ما اونجا اونجا اونجا بحث اصولیش اینطوری یه رو معلیه که یکی عنوان بحث دارین یکی قصد خارجی آیا اگر در مکان مقصود نمازون نمازش باطله اومده اینجور گفتن بیایید تحلیل بکنید تکالیف و اعتبارات قانونی و قانون آیا به عناوی تعلق میگیره یا به مهندنات عدم صلات به عنوان صلات تعلق میگیره یا اگر به عنوان تعلق میگیره به خاطر این نماز خارجیه به با عنوان تعلق این بحث در اصول به چه عنوان آوردن اوامر متعلق هم به تبعیض یا به به اصطلاح به اشخاص اعراض مثلا از کلمه منظور اون چیزی که این خیلی مهمه این بحث اصلا تعجمی یعنی نمیشه مثلا شو احزان مراد بحث اصول این میشه که آیا کلیه طبیعی در قراره موضوع در اصولش رو محاضرات نرسن که موضوعشون خیلی عجیب این خیلی عجیبه مراد آیان از خوب دقت بکنید بلا نشان بلا نشان دائما متعلق ان کلیه دائما اینطور نیست یک جایی باشه که مثلا باشه شور جزء یک است با تخصص خارجی شخص خارجی قابل تعلق اندر نیست اگر گفت در این درغه بلمیشو این درد معین و همین درغه بازه باز باز باز. این تمام خودشه درد اون یکی که متعلق امره باز در باز کرده این کلیه همین کلی شما هر چی میخواین تصور بکنین هر چی فکر بزنین به متعذئن باز هم کلیه ولی جزء اینو گفتن نمیشه یعنی هم تعلق به کلی میگیره به افراد میگیره چه احتماله به افراد بگیره این مراد آقویان من توضیح دیگه در محل خود شده مراد آقویان اینه چون اون مسائل رو بر موتنه شد آیا در اعتبارات قانونی اعتبار تعلق میگه به یا به معمونات اون وجود به چی که الله گرسته یا به معمونات که این نماز خارجی است یعنی وقتی که نماز بخون، نجزش بین نماز و روشن شد؟ اگر گفت قصد نخود نجزش بین قصر و خارجی است. خب نمیشه بگه هم بخون هم نخونم. هم قصر هم بگه نماز نمیشه. می‌بینید؟ این نمیشه که چون نذر به‌طور معنون... موعن. روشن شد مطلب؟ اما وقتی اون عنوان، عنوان صلات معموم باشه. این موعن، این کار مکلف رو به انتصال کرد توی قصر. این رابطه دو مقام جهل نداره. تو مقام جهل شهاره آمد گفت عنوان نماز واجب عنوان روزن عنوان غرفان حرام این مکلخ بود که در مقام انتصاب این رو جمع کرد این وقتی بشاره نزد پس یک بست این توی بحثه و اصول که دیگه نمیخوام تکرار کن شبیه, ب... شبیه بحثم توی عقود هم آمده اما این توی اعتبارات شخصیه مثالش هم مانه نفی و گفت این ده گندم گردم رو بختم به اون ده کلو شما، می کنم عنوانش ده کلو گردم معنونش هشت کلو گردم هیچ فرقی در موقعی فرقی میکنه. می این هستی در امور اعتباری خوب تو امور اعتباری شما چی اعتبار می کنی نظر رو عنوان میره یا نظر تو رو معنون می ره مثلا چه که در اصول قالب اجتماع رو ننییم قالبا نظر که به عنوان بر به معل سرایت میکنه. مثلا راهحت هم هست میخواد دیگم من حاصل بینه راهدی هم در برث هست. یک گدم گفتن نه از اون عنوان به معولند سرایت میکنه و نظر خود معل واحده نمیشه هم معموم به باشند من یا هنوز معاً واحد عنوان متعدده به معل واحد این توی صود این کهفی ایج پس بنابراین این. این مثال با مثال نماز جماعت فرم میکنه چرا؟ چون در ماه امر اعتباری ایخایی امشاهیه در ممر ایخایی انشای اعتباری عنوان ملاحظه میشه یا معنیم این خیلی آثار داره یکی از آثارش در اینجاست اگر روی این عنوان برم وقتی عنوان مطرح شده اگر عنوان مشکل نداره درست نامش رو مشخص کنید اون این درگیری گندو درگیری گندو فی مشکل نداره اگرن گندومی کنه کی رو, رو دو تا واجوری اجازه بکنه ببینید این از که یه نو ما واسه خود عقد با واقع تصير خیلی راحت تر است عقد نکاح رو تفسیر کرده نشه تو اول درخ دای تنظیم و تصير تفسیر کیفیت عقد چیه چی کاری مو انجام در عقد که مثل مثلا مرموشه از مثلا مونیر فیومی نرکنه مبادر از تو ماله به آیا مبادره مال به ماله مبادره مالک به که من مالک بودم یا من عرض کردی من مالک کتاب بودم جا من, من مالک رو عرض کردی این سالا در بحث اونجا حقیقت که داری من اونشالا مصرفت میشین که در اونجا اصلا به سرده چیه حقیقت درستقی مصوبه آقای اعتبار چه کار میکنی چه کار اعتباره مصوبه تو اجاره فرسون توی مثلا آیه گفته ما در به نقل عیان میکنی در اجاره نقل منافع میکنی در آقای نقل اتفاق میکنی اتفاق رو نقل میدی یا منافق یا عیان یا اتفاق حقایل این معاملات رو اینجور ترسی که کنی کنی شما عرض کنید؟ حس در اینجا اگر ما گفتیم که ببین یکی از این هم و در این هم عنوان چرا عنوان چرا چون این شایعات به امر واقعی نیستند که به ابرازه تا ابراز همین هر سال نیست این یک دو که به مقدار ابرازه این سوال تا مطلب یکی این که اول این خیلی نوته زنیم، این زارم اونهاش هم از امور اعتباری به امراض دو. حدود اون امروز اعتباری به میگذاریم نه به گفته چون باوری نداریم. اون به اگر گفت که ده کیلو ده اون که ابراز کرده چیه 10 کلو عنوانه مقداری که اعتبار کرده به مقداری ابراز 10 کلو نه دنبال واقع ما که 8 روز این کار این جا آیا ما تابع عنوانیم؟ <تصفح> یا تابع واقعیم؟ این عنوان طریق از اون واقع در اینجا اینجا را کن اینا میگن در امر اعتباری اینچادی یه تابه رازه دو منذار اعتبار هم تابه منذار اعتباره اون دفت گفت دهشی رو گندوم تو بختم شما نرا معنی من نگاه کن که رو اون منذاری که اعتبار کرده حساب بکن وضایی چی در؟ روی واقع خارجی هشی شما لب رو نگاه نکن واقع رو نگاه نکن عنوان نگاه بکن مددار ابراز هز امور اعتباری اقامش به ابراز و قمانش به مقدار ابراز ولی ازا اگر گفت ده چی فروختن اینجا عنوان رو اگر گفت این جنگون رو فروختن این گندم. به ده چی شما. این گندم هشتی هست اینجا بگیم با چون هشتی ها در مقابل دردار اگرام در سورت یک شما واقع نگاه هر داشت یک واقع یکی سردش کجا اختلاف دادا کرد تو مقدار ابراز یعنی در امور حون اعتباری میگن شما باید مقدار ابراز رو حساب بکنید اگر ابراز کرد در کیلو رو به دنبال در چی رو دارید اگر این جور ابراز کرد این گندم این گنگام رو فروختن عنوان ده کلو گفت این گنگام رو فروختن به ده کیلو، خودش هم هشت کیلو. مقدار ابرازش این گنگام این گنگام 8 است اما وقتی گفت ده کیلو فروختن عنوان ابرازش چیه؟ ده کیلوم. پس این یک قائلی رو تحسیص بکنیم که در امور اعتباری کنم چه اعتبار قانونی چه اعتبار شخصی دائمان از امر و یدور و مدار علی ابراز و حدودشم حدود ابراز روشنی شد حالا که این مزل روشنی شد برگرده پشره عبارت ای مرموشه ایجا جنگ رو در حالی تحسیل و همه اطلاعی کرد ایجا جنگ رو ده این که آیا جانب عنوان مرجعه یا جانب مهمن مرجعه اون صورت سه بومش من نگوزه بردیشون یه فتح که عهده ما که انجرس المعارضه این مراد از جرس المعارضه یعنی اون اعتباری اون اعتبار شخصی شما عمر وزن معلوم کلی یعنی عنوان عنوانی که داده عنوان درکی بود یعنی شما تو مقام اعتبار ده شیلو رو مبادله کردیم ده شیلو نه این گذامه خارجی و رو باقی هم قصد تومیه داریمید لب شما نگاه نمیشه این نقطه رو به قصد کنیم به نقدار امراض تو دهاز نمیشه نه لب خصد ما به لب خاصد کار نداریم از الاره بعد من از معلوم کلی سید فعال موزون موزون مرادش معنونه یعنی گذامه خارجی این معنند رو بگین این تنتبه داشته باشه این 8 کیلو بده به اون داخل که که در عوامل 10 کیلو، مشکل داره، دو مشکل داره. پس اون نکته فهمی چی شد؟ که ما در اعتبارات به دائر مدار انوان باشیم خدمت اصل امر اعتباری تحققش در مدار ابرازه هم نه داش در مدار مقدار ابرازه ما به واقع نگاه نمیکنیم، به مقدار ابراز نگاه می‌کنیم این خوشا شونده استشو ایشون که اشتغل از ذمت او به مانع است یعنی معامله درست تو کی رو سر خندهش گوش نشد چون مردمو شیخ و مشهور رو ولدم قائلن که امامر به حتی در باب امامر به تبعیه خورد یعنی به انوایی خورده به ذم مثلا مردمو استاد که قائل به انواییه از باب ملاکات وارد میشینه از باب مهندر هستم راه های دیگه تو وقتش شما هم نرس نمیخوام آباد بشه این یک فرض اول فرض دوم به این جرأت اول موجود هم ماریه که مرادیشون از موضوع ماهیم به اصطباق برده ماهندن یعنی معاوضه ایسا رو گفت گفت این گنده نگفت ده چیلو این گنده به اقفاد مشتری گفت این گنده رو فروختن به در چیلو گنده رو شدن مشتری شاید چون آدم متدعید مثال معاوضه رو یعنی ده چیلو انهو قداله کرده و هسته فرده این معاوضه باشه. روشن شد پس مردم میشه مردم میشه به دنبال عنوانه اگر عنوان عقده رو قا کرده و یه دنکیو درسته قا کرده گندم خارجی، گندم خارجی هفته هشت کیلو باطله. و اگه مشتری تاثیر نمیداره مسأله عقده میشه. البته یه نشون میدم پس از معاوضه دفع جمعی مردم میشه همون مدرنای مردم و که در ریبا معامله کلا باطله. ند نمیذاره زارت باطل کلا باطل لزوم به باطنی با شروع شنید الله <تصفيق>